و کلو امر مستقر سوره مبارکه قمر هست و این سوره هم از هست که در اوائل, اوائل زندگی مکی بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم نازل شد از نظر ترتیب سی و سوره هست که الله تعالی نازل فرمودند و مناسبت این سوره با سوره گذاشته در سوره نجم داشتیم که غیر از خدای عزواجل کسی را نخانید زیرا در, در محضر او در بار او هیچ کسی حتی قدرت شفاعت شفیع غالب نمیتونه باشه شفیق قهری نمیتونه باشه حال در سوره قمر می در پایان سوره اِنَّا کُلَّ شَئِنْ به قدر هر چیزی که ما آفریدیم یک حدی دارد یک اندازهی دارد قدرت مخلوق محدوده حد و اندازهی هست قدرت مخلوق به اندازهی نیست که بتواند مشکل کسی را حل بکند حاجت که کسی را برآورده بکند و خلاصه این سوره اینه که در ابتدا و آخر این سوره زجر و سرزنش هست، توبیق هست، همراه با نقل قول کفار برای شرکشون و همچنین تسلی هست برای آن حضرت صلی الله علیه وسلم در میان تخویف میاد، تخویف اخروی، تبشیر اخروی، تخویف دنیاوی، تبشیر دنیاوی پنج نمونه ای که این نمونه ها قبلن هم خواندیم، در این سوره این پنج نمونه، پنج نمونه عذاب مجدد یاداوری میشه اما این نمونه های عذاب که مال پنج قوم هست در هر سوره یاداوری که میشه بر اساس ادبیات و نظم و نصر همون سوره هست الله تعالی بر اساس وزن و قافیه و سجعی که در اون سوره وجود دارد این نمونه های تخویف را بیان می فرم. این سوره اسم سوره قمر هست قمر به معنی ماه هست چون در آغاز این سوره بحث قمر آمده و بحث ماه آمده و بحث انشقاق آمده یعنی شکافت شدن ماه دو نصف شدن ما. خداوند می فرماید اقتربت ساعت و انشق القمر قیامت نزدیک شد و ماه دو شد ماه شکافته شد ماه دو بخش شد ماه دو بخش شد یعنی چه؟ اولا که در قرب قیامت و در نزدیکی قیامت شکی نیست قبلا هم گفتیم بیست رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خودش از علائم قیامت است و یکی از علائم قیامت انشقاق قمر هست این معجزه است که الله عزوجل ماهر دو نصف کردند گرچه بعضی معتقدند البته این شرزمه قلیله هست اینا در اقلیت هستند که معتقدن این مربوط به آخر الزمان است اون زمانی که اذا شمس به ساعت خورشید پیچیده میشه و اذا نجوم کدرت وقتی که ستارها یکی یکی میوفته اون زمان ماه دو نصف میشه اما جمهور مفسری معتقدند که ماه در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم دو نصف شد دو تکه شد زمانی که مشرکین از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم مطالبه کردن موجزه خواستند گفتن یه آیه بمانشون بده یکی از موجزات را بیمانشان بده که ما باور کنیم شما رسول خدا هستید پیغمبر خدا هستید ان حضرت صلی الله عليه و وسلم در منا بودند این ایام ایام حج بود قبل از هجرت پنج سال قبل از هجرت این جریان مال پنج سال قبل از هجرت است ان حضرت صلی الله علیه و وسلم در منا بودند شب 14 بود و ماه کامل بود بدر بود ان حضرت صلی الله عليه و وسلم ماهر نشان دادند تمام کسانی که اونجا حضور داشتند همه مشاهده کردند که ماه دو نصف شد یک نصف ماه به طرف کوه حرار رفت و یک نصف دیگر جانب مخالف رفت از همدیگه فاصله گرفتند و بعد از دقایقی بعد از لحظاتی دوباره دو تکه و دو نصف ماه به همدیگه نزدیک شد و به هم چسبید پس این موجزهی هست که در احادیث آمده در احادیث صحیح آمده اما جایگاهی این احادیث را من خدمت شما عرض بکنم امام جساس رازی که یکی از علماء معروف از ایشو می فرمد حد اقل ده نفر از صحابه این حدیث را روایت کردند که وقتی که ده نفر از صحابه این حدیث را روایت بکنند بسیار معتقدند که حدش و جایگاهش جایگاه تواتر است علامه آلوسی که صاحب تفسیر روح المانی هست ایشو میفرماید روایت ها را و احادیس را که من بررسی کردم هم به همین نتیجه رسیدم که احادیثی که درباره شق قمر آمده در حد تواتر هستند یعنی در حد خبر واحد نیستند این احادیث متواترند كما در زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم دون نصف شد مي فرماند اللهم ألوسي انشق القمر وذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحجرة بنحو خمس سنين ما دون نصف شد در زمان رسول الله قبل الحجرة پانچ سال قبل وإن از روايت هاي صحيح آمده فقد صحا من رواية الشيخين روایت شیخین حماس ابن جریر هم روایت کردند عن ان آن اهل مکه سألوه علیه الصلاة والسلام، اهل مکه سأل کردند که ان یریهم آیه، آیه بیشون نشون بدند، فآراهم القمر شقینه، ماهردیدند دونس شد، حتی رأو حراء بینهما کوی حراء در وسط دیدند. حال اینکه ماه دونس شد در این شک نیست در زمان رسول چونکه ارز کردم بنابر احادیث متواتر هست و اونطوری که حضرت انس میفرماید از رسول الله این مسئله را خواستند تقاضا کردند پس بنابر خواسته آنها بود و بنابر اراده الله عزوجل بود این یک مسئله اتفاقی نبود این مطلب را به این خاطر ارز می کنم و روی این هم تاکید دارم که بسیاری از علما یا دانشمندان تحصیل کرده دانشگاه که در زمره علما هم محصوب می شوند و احیاناً اینها گاهی تفسیر هم نویسند و تفسیرهایی نویسند که بیشتر سعی می کنند آیات را معقول جلوه بدند و با عقل هم تطبیق بدند در چینین آیاتی به چینین آیاتی وقتی مواجه میشن برای اونها مشکل میشه بعضی از همین افراد لذا میخواهند که با توجه به اینکه که متأثر هستند از غرب و غرب زده بگیم هم باید با نیست میخوان که بگن که این مسئله یک مسئله اتفاقی است، یک مسئله طبیعی هست لذا در یکی از تفاصیر اینطور نوشته شده که این مسئله اتفاقا اتفاق افتاد و شاید بر اثر انفجاراتی که در ماه بوده ایشون به صورت ممکن و شاید منویسد یعنی این انسان جرأت داشتن باشد که عقلش را کنار بزند و وحی الهی را ملاک قرار بدهد و بعض قدرت خدای از و را ما به قدرت خودمون قياس بکنیم، خب ما انسان ها نمیتونیم، آیا قدرت الله از و مثل قدرت ماست، چن نسبتی هست، مثل قطره، یک قطره هست در مقابل دریا و یک شمی هست در مقابل آفتاب، چرا ما باید با همین عقل کوچولوی خودمون من این ربیائیم و بسنجیم و مقایسه بکنیم و کنم، حد و اندازش بکنیم، سغرہ کبرش بکنیم لذا می فرمایت ایشون شاید این دلیل انفجاراتی که در وسط ماه افتاده گاهی انفجارات گازها و مسائل دیگر میشه باعث میشه و اون انفجارات بوده که ماه را دو نصف کرده و این دو نصفش از هم فاصله گرفته. اما بعداً با توجه به اینکه هر نصفی کشیشی داره، جذابیت داره، دوباره آمده با هم متصل شده. لذا اینگونه توجیح کردن، معجزات را و اینگونه تعویل کردن، در واقع خانی ندارد، هم با آیه قرآن مجید و هم با احادیث متواتری که در این احادیث گفته میشه که از رسول الله صلی علیه و وسلم مشرکین سؤال کردند، خاستند که این موجز رو بی نشان بده لذا این توجیهات از نظر ما اصلا قابل قبول نیست اینجا بحث بحث قدرت الله است الله عز و جل یه روزی همین ماه و خورشید و ستاره ها را که هر یکی چند میلیون برابر زمین هستند تک تک می کند پس این دو کردن برای خدا کاری ندارد و فایده این موجز چیه؟ فائده این معجزه اولا صداقت و حقانیت رسول الله صلی الله علیه وسلم است به این صورت خدای تعالی نشان دادند که این نبی نبی ماست نبی به حق از طرف الله منصوب شده و فایده دومش این مشرکین تعجب میکردند که ایشون میفرماید قیامت برپا میشه زمان قیامت برپا میشه که خورشید نورش را از دست میده ستاره ها بینور میشن یکی یکی میافتند این همه تحولات در این مخلوقات بزرگ این چطور ممکنه الله تعالی نشان داد که این شق القمر ماه دو نصف شد ما با این عظمت وقتی که با چشم خودتون میبینید که دو تکه میشه پس قیامت که همه این سیاره ها و ستاره ها و ماه و خورشید اینا همه تکه تکه بیشند و نورشون را از دست بده هم ممکنه لذا اللہ تعالی به اونها نشان دادن وقتی که الله بهشون نشان دادند اونها دیگه هیچ توجیهی نتونستن بکنند بغیر از این که گفتن سحرون مستمر این جادوی هست علیه عزبالله به معجزه رسول الله گفتن جادو جادوی که همیشه ادامه داشته در طول تاریخ بوده آمده و رفته یعنی زودگذر مستمر بعضی گفتن که زودگذر بعضی گفتن قوی لذا اونها این توجیه را کردن مشرکین نپذیرفتن مشرکین قبول کردن که یک پدیدهی شد یک اتفاقی افتاد اما نسبت دادم, دادم به رسول الله کس جادو کرده اما دانشمند من امروز میگه که این یه پدیده طبیعی بوده و این نوع انکار معجزات هست بعضی ها معجزات را نمیتونند که قبول بکنند الله تعالی میفرماید اقتربت الساعه و انشق القمر قیامت نزدیک شد و ماه دو نصف شد یعنی یکی از علائم قیامت که انفجاراتی هست در سیاره در ستاره در خورشید او اینجا هم به شما نشان داده شد و این یرو آیتا یعرضو اگر ببینند این مشرکان این مخالفان قرآن مخالفان ابن ببینند آیه را آیتا آیتا عظیمتا بزرگی پروردگار را یعرضو اعراض میکنند روی برمیتابند و یقولو سحر مستمر و میگویند که این جادوی قوی هست یک مناش مستمر قوی شدید یعلو کل سحر تفسیر مظهری میگه جادوی قوی هست که بر هر جادوی می چربد و هر جادوی بر هر جادوی غالب میشه و بعضی میگن مستمر یعنی مار زاهر یزول ولا یبقى میره. جادوی هست اثرش فقط همین امشب بود دیگه میره دوباره باقی ماند و بعضی ها فکر کردند که رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم ما را چشم بند کرد به اصطلاح چشم‌های ما را بست جلوی چشم ما این طور نمایان بود حقیقتا نبود چون بعضی بلد هستن فنفوت چشم مردم را میبندند. اما بعداً در ایام بعدی در روزهای بعدی بقیه مردم که از اطراف از روستاها اینجا آمدند و اونها هم تعریف کردن برای اهل مکه که در فلان شب چنین پدیده عجیبی را ما دیدیم عجیبی را دیدیم اونها متوجه شدن که چشمها نبوده و ایلا اگر چشمائشون را میبس فقط همین حاضرین اونی که چندین فرسخ دوره اون از کجا خبر داره لذا و واتبعو احوائهم تکذیب کردن رسول الله را انادن از روی ضد و انادی که داشتن تعصبی که داشتن و تبعو اهواهم دنبال کردن خواهشات خودشان را نفس خودشان را الله تعالی می فرماید و کل امر مستقر هر امری بالاخره قراری دارد وقت قراری دارد منظور اینه که تکذیب اینها اولا در فیصله الهی هیچ تاثیری ندارد خداوند عزوجل فیصله فرموده دی که دین حق را برتر میفرماید موفق میفرماید اینها اهل باطل شکست میخورن نابود میشن دین اینها از می ره امروز که معجزه ظاهر شد و اینها موجزه را انکار کردند، انکار اینها هیچ تأثیری در اون پیشرفت دین ندارد، کل امر مستقیر، هر امری جای وقت قرار خودش را دارد و جای قرار خودش را دارد. ولقد جاءهم من الامبا ما فيهم مزدجر، انشقاق ما یکی از آیات هست. آیات دیگر اخبار دیگر برای اینها آمده علاوه از این آیه آیات دیگر که ما فیه مزدجر اون اخباری که در آن چی هست جای عبرت هست مزدجر زاجر یعنی زجر میگوین اصل به چیزی که انسان را دور بکند از بیدینی دور بکند از شرک دور بکند از معصیت دور بکند یعنی اخباری برای اینها آمده که اون اخبار در اون اخبار مزدجن محل زاجر بود در اون اخبار جای عبرت بود اون اخبار در واقع نصیحت بودن اقوام گزشته عذابهایی که برای اونها آمد حکمتن بالغتن اخباری که از نظر حکمت بالاترین حد رسیدن اما فما تغن نظر اینا وقتی که بغایت تعصب رسیدن بغایت زد و اناد رسیدن انذار به اونها فائده دار. فما تغن نظر یعنی هیچ فائده نبخشید انذار و بیم دادن این داشته باشی که نظر در این سوره چند جا تکرار شده در بعضی جاها نظر به معنی انذار است مصدر هم میاد نذر سیغه صفت هم میآید جمع نظیر یعنی پیامبران اینجا به معنی ترساندن هست به معنی انذار است الله میفرماید فما تغن نظر یعنی انذار و وعیدی که خداوند برای اینها فرمود هیچ فایده‌ای به اینها نبخشید لذا اکنون پیامبر خودش را بعد از این معجزه بزرگ بعد از این آیه بزرگ که اینها م... متذکر نشودن اینها ایمان نیاوردند خدای عزوجل به پیغمبر خودش تسلی میده و و و انهارا بیم میده از روز قیامت و احوال اینها را در اون روز بیان می فرماید الله می فرماید عنهم از اینها اعراز کن از اینها روی گردانی کن یوم یدعو داعی الی شيء نکر روزی که فرا می خاند فرا خاننده روزی که صدا میزند اینها را اسرافی فرا خاننده او را دعوت دهنده اینها را صدا میزند اینها را دعوت می ده الاشه این نکر بسوی چیز ناپسند ناگوار ناپسند اون چیه حساب و کتاب هست حساب پس دادن هست خوش شعن اب سارو هم افتاده از بس که خجلند، از بس که شرم، شرمنده هستند، اینها صرف گنده هستند. یا خروجون من الاجداخی که انهم جراد منتشر اینها از قبرهایشون خارج میشوند، ابتدا حالت ابتدایی خوششان ابسارهم هست. وقتی که تازه خارج می شوند، چشمشون پایین خجلند، میدونند که که هیچی ندارند. و حالت دوم یخ من الاجداث که انهم جراد منتشر اینها از قبرهایشون خارج می شون. گویا اینها ملخهای منتشر هستند یعنی اینها بیحال افتادند ملخ دیدید در فصل گرما وقتی که ملخ زیاد میشه. صبح انسان وقتی بلند میشه میبینه همه جا ملخ ها افتاده یکی پایش شکسته یکی بالش شکسته هی hey, تکان نمیتونه بخوره همین جا فقط میل ارزه یعنی انسان ها وقتی که از قبور بلند میشوند حال ندارن مثل ملخ پراکنده افتاده هستند تا اینکه اونجا اینها را صدا میزنن بی بسوی حساب و کتاب بیاید به میدان محشر اون وقت حالت سووم همه میدوند محتعینه یعنی مسرعین با سرعت می روند دوان دوان می روند الاد داعی بسوی اون داعی اون کسی که فراخان می ده یقول الكافرون هذا یومون عصر کافر متوجه می شه کفار می گویند این روز روز سختی هست امروز سخته مشکله که ما امروز باید پاسخ بدیم ما چی کردیم هیچ عملی نداریم نه ایمانی داشتن و نه عملی لذا اون روز روز سختی خواهد بود برای کفار و مشرکین کذبت قبلهم قوم نوح خب این شمی بود از احوال قیامت از احوال حشر بعث بعد الموت تا اینکه ادامه دارد هر یکی به محل خودش قرار میگیرد اما از کردم خدمت شما که این تخویف برای مشرکین بود مشرکینی که انکار کردند قیامت را هم انکار کردن معجزه رسول الله را هم انکار کردند. خدای از پنج نمونه از انکار کنندگان در عمت گذشته بیان می‌فرماید و اذاابهایی که برای اونها آمده خداون بیان می‌فرماید در واقع تلنگوری هست که شما که انکار می‌کنید عاقبت شما همونه. نتیجه شما همونه الله می کذبت قبلهم قوم نوح تکذیب کردن قبل از انها قوم نوح تکذیب کرد نوح علی السلام را این قوم نوح را تکذیب کرد عیناً تکذیب آنها مثل تکذیب قریش است فکذبوا عبدنا بنده خاص ما نوح را تکذیب کردند و قالوا مجنون و ازدجر و گفتند مجنون هست دیوانه هست همون چیزی که به رسول الله گفتن و از و ای استوتی جنونن یعنی جن زده شده ای این را علت جنونش چیه علت دیوانگیش چیه جنها و را زدند شیاطین و را زدند لذا جن شده ای هو مجنونون و الجن فخبطته و زهبه بعقله جن و را زده شیطان و را زده اقلش را از بین برده به حضرت نو علیه السلام گفتن خلاص نوح تبلیغ میکرد اونها همینو میگفتن اونها مسخره میکردن تا اینکه نوح نو علیه السلام دعا کرد مسئلت دعا کل دعا فی مسئلت دعا ببینید انبیاء در ازترار دعا میکردند از که میخواستن از رب میخواستن و نوه علیه سلام اینجا چه دعای می کند. دعای موس... نوه سلام قابل تعمق است. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. نوه دعا کرد که بار اله من مغلوبم، اینها غالبند. من قدرتی ندارم در مقابل اینها، فانتصر از اینها تو انتقام بگیر. ببین پیغمبر خدا اظهار عجز می کند، معلوم میشه که پیامبران پیامبرند و مقربند جائگاهشون والاست اما قدرت خدایی ندارند قدرت خدایی ندارند اون داستانهایی که بعضی بیان میکنن برای اولیاء خدا که قدرت خدایی دارن این داستانها داستانهای غلطی است چرا کسی میتواند به قدرت خدای خودش بنازد که خدای من اینقدر قدرت داره اما اینکه بعضی گفتند که ما میتونیم این زمین و آسمان را فرو بریزیم و عالم را از بین ببریم و مخالفات ن خودمون را با خاک یکسان بکنیم همه را زیر و رو بکنیم اما ما چیکار میکنیم ما دعای هدایت میکنیم یعنی گویا این بزرگوار ادعا میکند که من قدرت خدایی دارم نه پیغمبر خدا چی میگه فدعا ربه انی مغلوب فنتس از رب خاص دعا کرد گفت بار الها من مغلوبم من قدرتی ندارم تو انتقام بگیر نو, نو علی السلام وقتی دعا کرد رب هم اجابت کرد ففتحنا ابواب السماء بماء ما گشودیم باز کردیم درهای آسمان را بما ام منهمر به آبی تندریزان منهمر یعنی خیلی تون میریخت، با سرعت می‌ریخت و فجرنا الارض عیونا آسمان، هم باز شد دهنش باز شد زمین هم دهنش اش باز شد و فجرنا الارض جاری کردیم زمین را چطور جاری کردیم زمین را عیونا یعنی چشمه های زمین را جاری کردیم چشمه که در زمین بود هم اینها فواره زد اینها هم دهنشون باز شد پس عذابی که آمد هم از آسمان آب ریخت و هم از زمین انفجارات چشمه شد فواره ها زده شد و فجرنا الارض عیونن فجرن الارض یعنی جاری کردیم در زمین و باز کردیم در زمین چشمه را فلتقل ما و على امر قد قدر آب با هم دیگه برخورد کرد آب آسمان و آب زمین یعنی با هم دیگه همراه شد علی امرین یعنی علا به معنی لام هست ل برای امری که مقدر شده بود یعنی همون امری که خداوند مقدر فرموده بود که این قوم باید نابود بشه باید هلاک بشه الله تعالی اون مقدر کرد و نور علی الصلاه والسلام و پیروان نور ما نجات دادیم و حملناه علی ذات الواح والدسر او را حمل کردیم خداوند کشتی را تعبیر می کند یعنی کشتی بهانه بود چند تا تخته و میخ بودند علی ذات الواح بر چیزی که دارای الواح تخته ها بود و دوسر میخ ها بود چند تا تخته و میخ بودند الله بر آنها حمل کرد این پیامبر بزرگ را با تمام امت و کسانی که به او ایمان داشتن تجریبی اعیوننا زیر نظر ما جاری بود یعنی خدا تعالی دستور داد که روی آب برود جزائن لمن کان کفر این جزا بود کیفر اعمال اون انسانی بود که کفر اون ناسپاسی شد یعنی که نو علیہ السلام جزائن یعنی فعل نازال که این عذاب را ما به اونها دادیم این کار را کردیم چرا جزای اون انسانی که ناسپاسی شد سلام نعمت خدا بود نبی خدا بود از این نعمت اونها باید حد اکثر استفاده را می کردن. اما این نعمت را اونها ناسپاسی کردند کفران نعمت کردند ما آلوسی می فرماید نه تنها نوح هر پیامبری برای امت خودش برای قوم خودش یک نعمت است هر وقتی که قوم نسبت به اون پیامبر این ناسپاسی را بکند این ناشکری را بکند نتیجه او هم همین می شه ای فعلنا ذالک جزاء لنوح علیه السلام ما کار را به خاطر اینکه جزای نوح بود ما جزایی که در مقابل این نعمتی که نوح باشد بأن قوم دادیم. كان نعمه انعمها الله تعالى على قوم. نو نعمتي بود که خدا انعام کرده بود بر قومش نعمت کردن. كل نبي همجيني هر نبي نعمتو من الله تعالى على هر اللہ تعالی اون قوم را به همین عذاب و یا به شبیه این عذاب گرفتار می‌فرماید. پس الله می فرماید قد ترکناها آیه فهل من مذکر" همانا این داستان را، داستان نور را ترکناها یعنی القصه، قصه نور را، داستان نور را این در ما یک درس عبرتی قرار دادیم، یک نشانه قرار دادیم. فحلم مدکر ترغیب است که ما از داستان‌های قرآن تذکر بگیریم فحلم مدکر آیا کسی از که پند بگیرد، آیا کسی است که تذکر بگیرد، انتظار رب ما از ما این هست که هر داستانی که در قرآن میاد اون داستان را به عنوان یک داستان و سرگرمی ازش رد نشیم بلکه نکاتی که اون داستان دارد نکات ایمانی نکات نقاط اخلاقی نکاتی که در اونها پند و موعظه هست اینها را انسان بگیرد ولی متاسفانه ما کمتر از داستان ها استفاده میکنیم و بیشتر گاهی داستان ها را چنان بیان میکنی و چنان به مردم نشان میدهیم که هیچ نو پندگیری نیست مثلا همیشه می میکنم در سوره یوسف داستان حضرت یوسف علیه السلام یک داستانی هست که از اول تا آخر سراپا پند و اندرز است. داستانی هست که انسان از این داستان ایمان را یاد میگیرد انسان به این نتیجه میرسد که عزت و, و زلت به دست خدا است به دست کسی دیگه نیست انسان به این نتیجه میرسد که غیر از خدا تعالی هیچ کسی غیب نمی داند، غیر از خدا تعالی هیچ کسی قدرت ندارد دهها موعظه اخلاقی و درس افت و پاکی در این داستان هست اما بعضی از عزیزان ما این داستان را به مردم در غالب فیلم طوری نشان دادن که هیچ موعزه احساس نمیشه احساس میشه که مثل همین فیلم های امروزی که درست کردند داستان دو تا عاشق و معشوقه از اول فیلم تا آخر فیلم گویا بحث یوسف و زلیخا دیگه هیچ چی تو این داستان نیست در حالی که شما در قرآن نگاه کنی فقط دو جا بحث زلیخا اومده یک جای اونجا که یوسف چی میکنه یوسف را دعوت میده اونجا که اعتراف میکنه دیگه هیچ بحثی تو قرآن نیست تو قرآن در سوره یوسف همیش بحث توحیده بحث ایمان هست بحث افت و پاکی هست این مباحث اصلا بر جسته نشدن این مباحث اصلا اونطوری که باید بیان بشند دو مردم درک بکنند و بفهمند بیان نشده و بعد یه چیزای مزخرفاتی اضافه شدند و داستان قرار داده شدند نباید از داستانهایی که در قرآن مجید هست انسان به این صورت داستانها را دنبال کند و به عنوان یک داستان و یک سرگرمی و یک از کنم چیزی که ما وقت خودمون را بگذرانیم ازشون استفاده بکنیم الله میفرماید این قصه نوح این داستان یک ای هست یک درسی هست فحلم مدکر آیا کسی هست که پند بگیرد مدکر اصلش هست متذکر کسی که پند بگیرد تذکر بگیرد نصیحت حاصل کند از این داستان یک پندی که میگیریم اینه فکی فکان عذابی و نظر چگونه عذاب من سخت هست این استفام استفام تحویل است در مخاطب حول ایجاد میکند در مخاطب وحشت ایجاد میکند الله میفرمد چگونه سخت است عذاب من؟ و نزر و انذار من ترسندن من وقتی که خدا بندگان خودش را بیم میده میترسند واغین انسان باید موی بدنش بلند بشه و بترسد و بعد الله تعالی همه ما را دعوت میده دعوت بی چی؟ دعوت تذکر از قرآن ولقد لقد القران القرآن للذکر همانا ما قرآن را آسان نازل کردیم لذکر برای پند. ببینی لذکر البته دو معنا عرض میکنم یکی ذکر معنای پند هست. یعنی قرآن. ببینید در قرآن علوم زیاد هست. در قرآن اگر انسان خوب بررسی بکنه تمام دانشمندان که مال هر رشتهای هستن میتونن مباحث خودشون را از قرآن بگیرند. الله عز و جل در باره فلکیات بیان فرموده ستاره ها و سیارات بیان فرموده نباتات بیان فرموده جمادات حیوانات حیاتیات همه مباحث تو قرآن بحث شده اگر انسان از نظر علمی نگاه بکند قرآن مشکله یعنی مباحثی که خیلی از آیات هستن علماء بزرگ در فهمشون مندند اما قرآن از چی نظر آسانت است؟ لذکر کسی میخواد اون بخش مععزش را نگاه بکنه کسی میخواد که پند بگیرد از قرآن راحت پند میگیرد یعنی از نظر پند گرفتن آسانه و بعضی گفتن ذکر به معنی حفظ است ذکر به معنی حفظ است قرآن را ما آسان کردیم از نظر حفظ کردن کسی بخواد حفظش بکنه آسانه پیرمردها هم میتونه حفظ کنند جوان ها هم میتونه حفظ کنند اونی که قوی هست حافظش هم میتونه حفظ کنه اونی که بطی هست و کند هست هم میتونه حفظ کنه همیتون قرآن را سعی کنید حفظ کنید اگر کلش میسر نیست یک بخشی را حفظ کنید قرآن را الله میگه ما آسان نازل کردیم حمت ما کمه ما ضعیف هستیم کسی را ما دیدیم چند سال پیش بود ریواند رفته بودیم اونجا یک شخصی را یک عالم جوان بسیار با تقوی بود دوستان میگفتن که این در ظرف یک ماه حفظ کرده قرآن ما تعجب کردیم این چطور در ظرف یک ماه حفظ کرده دنبالش کردیم و گفتیم شما چطور در ظرف یک ماه حفظ کرده جوابی نداد فقط همین آیه رو خند ولقد یا سرن القرآن لذکر یعنی کسی بخواد حفظ بکنه خدا آسان کرده درسته که ما بعضیها دیرتر حفظ میکنیم بعضی زودتر بعضی سه سال بعضی چهار سال بعضی دو سال, بعضی شش ماه ولی قرآن برای حفظ آسان هست و این معجزه قرآن هست که در دنیا هیچ کتابی این قدر حافظ نداره هیچ کتابی در هیچ دینی در هیچ مذهبی در هیچ موضوعی چه موضوعی دینی باشه چه موضوع دنیوی باشه هیچ جایی نیست هیچ کتابی نیست که این قدر حفظ کننده داشته باشه شما هر جای دنیا برو اگر تعدادی مسلمان اونجا هست حتما در میانشون حافظ قرآن هم هست و بعضی جا هزاران و ده ها هزار حافظ هست در بعضی بلادگاه آمار را نگاه می کنیم در یک سال نزدیک به ده هزار نفر حافظ می شن. در یک سال در یک کشور فقط لذا الله تعالی قرآن را برای حفظ کردن آسان نازل کرده. این توجیه دوم هست ولی بیشتر اون توجیه اول را ذکر کردن تفسیر اول را که قرآن را برای پندگیری هر کی میخواد پند بگیرد، موعظه بگیرد و راحت از قرآن میگیرد. <تصفح> لذا الله می فرماید وَلَقَدْ القرآن الْقُرْآنَ همانا ما آسان نازل کردیم قرآن را برای پند فهل من مِمُدَّكِرْ آیا هس کسی که پند بگیرد پس این اولین معزه بود اولین نمونه بود قوم نو. و داستانینو نمونه دوم کذبت عاد فكيف كان عذاب ونذر خوب این داستان ها رو تفسیلشون رو شما خوندید نیازی به توضیح بیشتر نیست کذبت عاد تکذیب کرد قوم عاد فكيف كان عذاب ونذر چگون سخت است عذاب من و انذار من چطور ما سخت گرفتیم اونها را انا ارسلنا عليهم ريحا سرسرا اما انا نازل کردیم بر آنها بعد تندی بعد بسیار شدید و تندی فی يوم نحس مستمر در روزی که اون روز روز نحس بود روز نحسی بود برای اونها نحس بود در حق اونها شوم بود و اون روز روز نحس بود چون به عذاب ابدی خدا گرفتار شدن مستمر از کنم که یا این که این صفت صفت نحس است یا صفت یوم هست در روزی که این روز ادامه داشت یعنی عذاب تنها یک روز نبود الله تعالی هفت شب و هشت روز سخراها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام و دفعه اینکه این صفت یوم نیست صفت نحس اون نحس ادامه داشت ببین برای بعضی انسان ها یه مصیبتی میاد یک روز است دیگه تمام میشه اما برای اینها نه تمام شدنی نیست اینها به عذاب خدا گرفتار شدند بالاخره دنیایشون تمام شد دنیا که تمام شد قبر و عذاب قبر و عذاب برزخ شروع میشه او تا که هست؟ تا قیامت قیامت که برپا شد باز عذاب جهنم شروع میشه اون تا که هست؟ عبدالعباد پس آیا این نحس و بدبختین ها مستمر هست یا نیست؟ مستمر ره. فی اوم نحسن مستمر این عذاب وقتی که آمد تنزع الناسا مردم را از ریشه بر و می انداخت این مردهای تنومند را این هایی که قرآن میگه گه لم یخلق مثلها فی البلاد مثل اونها در شهرها آفریده نشده بود اینها میافتادند مثل تنه درخت خورما که انهم اعجاز و نخل منقعیر گویا اینها تنه درخت بودن که منقعیر از بیخ کنده شده از قعر و از ته کنده شده این کلمه نخل از نظر لفظی مذکر است از نظر معنوی مؤنث است این را میگم که شما نگید چرا تعارض است اینجا صفتش مذکر آمده جای دیگه صفتش مؤنث آمده چون که اینجا به اعتبار لفظ است اونجا به اعتبار معنا است اینجا است نخل منقر اونجا است نخل خاوی بس اونجا موانس آمده به این دلیف فکیف کان عذابی و نظر چگونه سخت از عذاب من و انذار من ولقد یسرنا القرآن للذکر همانا ما قرآن را آسان نازل کردیم برای پندگیری فهل من مدکر آیا هست کسی که پند بگیرد؟ این نمونه دوم عذاب بود نمونه سوم اینا برای مشرکین گفته میشه و آخر روی سخن به خود مشرکین به اهل مکه برمیگردد کذب سمود و به نظر سمود هم قوم سمود هم تکر انکار کرد و تکذیب کرد را. اینجا مراد از نذر جمع نذیر است را اینجا به منع انذار نیست خب سوال اینه که قوم سمود یک پیغمبر را تکذیب کرد فقط حضرت صالح را تکذیب کرد چطور میگه همه انبیا را علامه علوسی جواب داده فَإِنَّ تکذیب احدهم وَهُوَ صالح هنا تکذیب تکذیب للکل تکذیب یکی که صالح باشه تکذیب همه انبیا به حساب میاد چرا لاتفاقهم على اصول الشرایع چون همه بر اصول شریعت ها متفق هستند در اصول همه اصول همه توحیده، معاد قیامت رسالت نبوت اصول همه انبیاء یکی هست پس این ها وقتی که اصولشون یکی هست متفقند متحدند صالح را که تکذیب کرد همه انبیاء را گویا تکذیب کرد کذبت ثمود بالنذر تكذيب کردن قوم ثمود انبياء را چی گفتن فقالوا أبشرا من منا واحدا نتبع قلت ايا يك بشر از ما ما اورا پیروی کنیم آیا انسانی را پیروی کنیم ان اذا لفي ضلال وسعور اگر ما انکار را کردیم همانا ما در این هنگام در گمراهی و دیوانگی خواهیم بود ما دیوانه کی بیایم از کسی مثل خود ما پیروی کنیم اول قیر ذکر عليه من بیننا آیا بر او وحی آمده از بین این همه ما از بین همه ما بر او وحی آمده بل هو کذاب اشر بلکه این صالح بسالح می گفتن علیه سلام او کذاب است دروگوه است و اشیر خودخواه است مغروره میخواد خودش را سردار بکنه که این دور میگه الله عز و جل میفرمد سيعلمون غدم من الكذاب الاشیر به زبان حال گوی خداوند گفت فردا اینها میدونند که کذاب اشرکیه دروغگوی خودخواہ کیه آیا صالح است یا خودشون پس فردا معلوم شد وقتی که عذاب آمد صالح نجات پیدا کرد دشمنانش نابود شده مشخص شد که کذاب اشر اونها بودند نه صالح علی السلام خب چطور فردا ما عذابشون میدیم این نامورسل ناقته همانا ما فرستادیم شتر هستیم که این شتر امتحانی هست برایشون خودشون گفتن شتر از دل کوه بیرون ما شتر را فرستادیم فتنت لهم امتحانی بود برای آنها فرتق به هم و استبر یعنی ای ساله منتظر آنها باش و استبر کن تامل کن منتظر باش که خدا با آنها چی میکنه. ونبئهم ان الماء قسمه بينهم ببینی وقتی که شطور آمد داستان مفصلش در سوره هود هست در سوره شعرا هم هست وقتی که شطور آمد شتر را الله تعالی چنان حیبتی داده بود چنان رعب و وحشتی که حیواناتشون وقتی شطور را می دیدن رم می‌کردند همه گوسفندان گاوها شترها، شطور که می‌آمد اونجا اونجایی که حوز آب بود آب می کشیدند اونجا که می آمد تمام حیوانات فراد می کردند و وحشی می شدند بالاخره اونها شکایت کردند پیش ساله گفته که نمیشه که شما شطور را آوردید الان حیوانات ما از آب محرومند خداوند به ساله دستور داد که شما از این به بعد آب را تقسیم کنید یک روز مال شطور یک روز مال حیوانات اونها و نبعهم به آنها خبر بده ان الماء قسمتون بینهم آب تقسیم بین اونها کل شرب محتضر شرب یعنی نوبت آب هر نوبت محتضر یعنی وقت حضورش هست یعنی همون گروه نوبت هرکی بود اون باید حاضر بشه اگر نوبت حیوانات شما بود شما اونها رو حاضر کنید مال شطور بود شطور حاضر میشه بالاخره. این آخر به تنگ آمدن دیدن نمیشه با شطور شطور عذابی شده بود برای اونها شطور برای حیوانات اونها مشکلاتی ایجاد کرده بود برای خود اونها به این دلیل بود که چون هر جا بیابان میرفت اونها نمیتونن بچرند آب می رفت اونها نمیتونستن آخر یکی یک زنی که مالدار بود و گوسفند زیاد داشت اون زن کسی را اجیر کرد گفت تو بیا و این شطور را بکش اون زن به اون وعده داد میگن این زن زن بیوی بود ولی خیلی مال داشت و سرمایه داشت همین فرد که شطور را کشت این فرد خاستگاری اون زن بود قبلن خاستگاری کرده بود این فرد اسم, اسم بود قدار ابن سالف قدار ابن سالف این قدار خاستگاری کرده بود از این زن که شما با من ازدواج کن به خاطر مالش بود اون قبول نکرده بود اما اینجا به اون قدار گفت که من با یک شرط بعد ازدواج میکنم همین شطور را بکشی چون مردم میترسیدن از یک طرف ایمان نداشت از یک طرف میترسیدند که این شطور بلای نشه هر که بکشت خودش کشته نشه لذا این زن گفت اگر این موفق شد شطور را بکشد من باش ازدواج میکنم خلاصه این و شطور را کشت شطور را که کشت حضرت صالح علیه الصلاه و السلام گفت این آیه از آیات الهی بود از شعائر الله بود چون موجزه از شعائر الله است الان که توهین کردی به شعائر الله منتظر باشی سه روز دیگه عذاب شما میاد تا سه روز خدا مهلتشون داد و اینها وقتی که دیدن که صالح ما را داره تهدید میکنه گفتن قبل از اینکه که چیزی بشه چون می ترسیدن یه وقتی واقعا عملی نکند تصمیم گرفتند در جای دیگر از قرآن هست با هم مشوره کردند که نیم شب میریم صالح را از بین میبریم صالح را میکشیم چند نفر با هم تصمیم گرفتند همین شب که اینها اراده داشتند که صالح را از بین ببرند این شب عذاب خدا شروع شد لذا الله می فرماید فنا دعو صاحبهم ندا کردن صاحب خودشون را همراه خودشون را یعنی قدار ابن سالف را فتعاطا فتعاطا یعنی تعاتی به گرداندن چرخاندن چه چی چیزی را چرخاند چه چی چیزی را گرداند بعضی می گویند که الناقه فتعاط ناق را گرفت و اون را چرخاند به هر طرف بعضی میگنه شمشیر از سیفه فتعات از شمشیر خودش را بالاخره دور داد و گرداند فعقر او را از پای در آورد شطور را زد و از پای در آورد فکیف کان عذابی و نظر چگونه عذاب من سخت است و انذار من سخت است بالاخره چیکار کرد خدا با اونها؟ انا ارسلنا عليهم صيحه واحده ان كيفيه عذاب ما فرستادن برونها یک فریاد یک فریادی که جگرهاشون را پاره کرد و همراه با این فریاد صاعقه از آسمان آمد فكانوا كهشيم المحتضر اينات چنان اينها را برق گرفت و چنان جگرهاشون پاره پاره شد که شدن که حشیم ممنتظر حشیم میگه این کاهی که حیوان اورا را و بعدا میندازد. تو شکمش هم نمیبره تو میش نمیبره. می زیر دست و پال له هست. این کاه دیدید که تو آخرها افتاده هست و زیر دست و پاهال له لذا اینها مثل همون که جویده شده و آشغالی که زیر دست و پاها له شده مثل اون شدن که حشیم مثل تفالها و مثل زبالهای که محتظر اون لگت مال شده اینها اون طور شدن یعنی خدا تعالی اینها را چنان بدنهایشون را خراب کرد و اینها از بین رفتند که مثل اشغال پوسیده شدند و لقد القرآن ما قرآن را آسان نازل کردیم برای پندگیری آیا کسی هست که پند حاصل کند کذبت قوم لوط به نظر این از به خدمت شما که نمونه چهارم عذاب هست نمونه چهارم از تخویف دنیاوی هست قوم لوط. الله می فرما قوم لوط تکذیب کرد انبیاء را تکذیب کرد چون لوط را تکذیب کرد همه انبیاء را تکذیب کرد لوط را که عمل لواط هم داشتند و دیگه شرک هم داشتند چگونه ما عذاب دادیم ان ارسلنا علیهم حاصبا ما فرستادیم بر آنها حاصب اینجا خدای عزوجل اون سرنگونی روزتا را ذکر نکرده اینجا به صورت اختصار اون بعدی که بعدش همراه با خودش سنگریزه داشت این سنگریزه ها هر یکی یک سنگی بود مخصوص یک فردی که شما دیروز خواندید قبلا خواندید مسومتن عند ربک نشانی شده بود این سنگ به فلانی باید برخورد بکنید اینها را بعدی آورد که در فضا بودن اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِبَا بادی شن بود بادی که همرا با خودش اونها را سنگ کرد الا آل مگر آل لوترا ما نجات دادیم نجیناهم بسحر ما انهارا نجات دادیم در وقت سحر نعمتم من عندنا این نجات دادنشون نعمت واللطفی بود از جانب ما کذالک نجزی من شکر این بیان سنت الله است الله می فرمایی این ما بجزای نیک می دهیم من شکر هر بندی مؤمنی کی شکر گزار باشد اینا چون ایمان آورده بودن سپاس گزارو شکرگزار بودند خداوند می این نجات و این نعمت مخصوص قوم لوت نیست مومنینی که بلوط ایمان آوردن نیست هر مؤمنی که شکر گزار باشد سپاس گزار رب باشد ما او را جزای نیک می دیم. اما قوم را چگونه ما حلاک می کردیم ابتدائن ان نوح انها را بیم داد ترساند از عذاب ما ولقد انذرهم بطشتنا هم انا لوط انهرى ترساند از گرفت ما از عذاب ما فتمرو بنظر انها شک کردند تماری یا به معنی شک هست یا به معنی جدل است بحث کردن است درگیر شدن هست نسبت به انذار یعنی yani نسبت به عذاب آنها بحث کردند قبول نکردند انذار را وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ تا اینکه مهمانان آمدن پیشه لوت و السلام. که قبلن خاندیم مهمانان شکل فرشته آمدند اینها آمدن که از مهمانان را بگیرند از کنم نیت بد و که داشتند خانه وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عن تلبیدند لوت را چیش را تلبیدند ان میمانان میمانانش را بلاخره شما میخانید در سوره حود که لوت علیه سلاط و سلام جلوی انها را گرفته بود و اونها را زاری میکرد. کرد ها اولای بناتی هن نتارو لکم دختران من که همسران شما باشند شما اگر نیاز جنسی دارید اونجا برید اما اونها قبول نکردند و آخر بر لوت غالب شدند بر که غالب شدند لوت را کنار زدند و حمله کردند بر مهمانان مهمانان داخل نشسته بودند اینا وقتی که حمله کردند فتمسنا اعیونهون ما چشمایشون را تخته کردیم تمس میگویند یعنی برابر شدند چشم با چهره چی شد؟ برابر شد تخته شد یعنی بر چشمای اونها چی آمد؟ گوشت آمد بر چشمای اونها از کنم خدای عزواجل چیزی آورد که چهره شون کاملا یکی شد را دید را خدا از اونها گرفت اونها مندن ما کار کردیم کجاییم هرچی دست و پا می زدن به جایی نرسیدن فزوق و عذاب و نظر عذاب من را بچشید و انذار من را شما عذاب را باور نمی کردید الان بچشید ولقد صبح هم. بل اخر اینها وقتی که دیدشون گرفته شد فرشتگان به لوط علیه السلام گفتند که وقت صبح عذابشون هست ولقد صبحهم این عذاب زمان عذاب است صبح کرد اونها راست یعنی در وقت صبح پیش آنها آمد عذاب بکرتن یعنی صبح زود ولقد صبحهم بکرتن عذاب مستقر یعنی عذاب دائمی یا عذاب قوی سر صبح پیش انها آمد فذوق و عذابی و نظر عذاب من و انذار من را بچشید و لقد یسرنا القرآن فهل من مدکر ما قرآن را برای پندگیری آسان نازل کردیم آیا کسی هست که از این کلام ما پند بگیرد؟ ببینید مفسرین نوشتن وقتی که خدای عزواجل جمله را بار بار تکرار میکند این جمله معنادار است این تکرار معنادار است این نیست که فقط بگیم به خاطر سجع و قافیه آیات خدا تکرار میکنه نه این مطلب خیلی مهم است که خدا تاکید میکند شما وقتی که مسئله مسئلهی را تاکید بکنید تکرارش میکنید مثلا کسی میگه کتاب بخوانید دانش آموز ازش میپرسد که به من نصیحتی بکن میگه کتاب کتاب کتاب یعنی نصیحتی اولم هم کتابه دوم هم کتابه سوم هم کتابه لذا چند بار که خودت تکرار می کند یعنی این معمولی از کنار این آیه رد نشو برای پندگیری از قرآن خودت را آماده کن و مشغول باش همیشه پند بگیر نمونه پنجم از تخویف قوم فرعون هسه الله میفرماید ولقد جاء آل فرعون النذر آمد پیشه آل فرعون هم نذر آمد یعنی اون نذیرها آمدند انبیا آمدند یا نظر اونایی که باعث انظار هستند تکوینن و تشریعن پیش انها آمدن کذبو به آیاتنا اناد مجرمین انها تکذیب کردند آیات مارا کلها همه آیات را فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر ما انها را معاخذه کردیم معاخذه ذاتی که غالب و مقتدر است توانمند است سخت گرفتیم را. لذا برید نتیجه فرعونی ها را ببینید خب پس پنج نمونه از عذاب تمام شد قوم نوح قوم عاد سمود و لوط فرعون حال الله عز وجل التفات می فرماید به سوی اهل مکه و خطاب می کند اهل مکه را ای اهل مکه شما خونیتون از اونها قرمستر که برای شما عذاب نمیاد شما ذاتتون و نصبتون بهتره شما چه برتری داری که فکر میکنید کنید عذاب برای اونها بوده برای شما نیست اکفارکم خیر من اولایکم اینجا التفات سوی اهل مکه هست آیا کفار شما و کف کسانی که از شما کف را انتخاب کردن بهترند از اونها یا نه بهتر نیستی ولی شما دلتون جمع که حتما تو یکی از کتابهای آسمانی نوشته شده که قریش مکه عذاب داده نمیشه ام لکن فی الزبر یا یعنی اینکه برای شما براعت هست در صحیفه های آسمانی در کتابهای آسمانی براعت شما نوشته شده که شما از عذاب بری هستی شما از عذاب بدور هستید آیا چنین چیزی هست که شما اینقدر مغرور هستید و گوش نمی به دعوت انبیا، ام یقولون نحن جمیع منتصر یا اینها میگویند که ما یک جمع هستیم یک لشکری هستیم منتصر منتصر یک معنیش هست انتقام گیرنده یک معنیش هست قوی که هم دیگر را یاری میکنیم پشت هم دیگر هستیم ما یک جمع هستیم یک لشکری هستیم هیچ که نمی ما نمارا شکست بده شاید شما این را میگید به جمعیتون مغرورید به تعدادتون مغرورید اللہ میفرمه سیوزم الجمع و یولون ان قریب این جمع شکسته میشه این جمع شکست میخورد و یولون دبر پشت میدهند و فرار میکنند ببینید این سوره سوره مکی بود این سوره در ساله هشتم به نازل شده یعنی پنج سال قبل از هجرت اما در این سور خدای تعالی پیشگویی میکنه جریان بدر را هفت سال بعد از این بدر اتفاق افتاد پس این یکی از دلائل نبوت رسول الله صلی اللہ وسلم است معجزات است این ما میگیم قرآن معجز است پیشگویی های قرآن هر پیشگویی می اون درست از آب در میاد همونطور که هفت سال پیش گفته شد این جم شکست می خورد و مثل موش فرار می در روز بدر همین اتفاق افتاد ما آلوسی نوشته، وقت کان هازا یوم بدر این اتفاق کی بود روز بدر و هو من دلائل النبوه این آیه از دلایل نبوت محمد صلی الله علیه و سلم است لان الايه مکیه آیته است مکی است و قد نزل نزلت حيث لم يفرض الجهاد این آیه اون وقت نازل شد که هنوز jihad فرض نشده بود ولا کان قتال هیچوقت قتالی نبود خبری از جهاد جنگ نبود اونجا خدا میفرماید پس سیوه زم الجمع این جمع شکست خواهد خود انقریب یولون دبر و پشت خواهند داد، اما این شکست و این عذاب در روز بدر که بهترین های این جمع کشته میشه در اون روز این عذاب یک عذاب کوچک است وعده اصلی اون نیست وعده اصلی کجاست بل ساعت موعدهم بلکه قیامت موعد اصلی انهاست و ساعت و ادها و امر قیامت بسیار سختر هست و بسیار تلخست هست بسیار تلخه هست تلخی قیامت هیچ وقت از زائقین ها نمی روید اونجا وقتی که قیامت برپا بشه مجرمین چه وزی خواهند داشت این المجرمین فی ضلال و همانا مجرمان در گمراهی خواهند در گمراهی هستند و دیوانگی هستند قال ابن عباس فی خسران و جنون مجرمین در خسران و جنونند در گمراهی و خساره هستند و دیوانگی یوم یسحبون فی النار روزی که کش داده میشوند این مجرمان در آتش جهنم علا وجوههم بر چهره این ها اینها افتاده و روی چهره کش داده میشوند بیان ها گفته میشه ذوقو مس سقر ای لهم بیانان گفته میشه بچشید مس سقر مس جهنم را یعنی ضربه جهنم را آتش جهنم را حرارت جهنم را بچشید اِنَّا شيء شَيْءٍ خلقناه بِقَدَرٍ هم آنا ما هر چیزی را که آفریدیم به ایک اندازه آفریدیم این مدعای سوره است هر چیزی حدی دارد اندازه دارد هر قدرتی هم حدی دارد نیست که بگه اونجا خدایان کمکش خدایان ارزیش را ندارند قدرتش را ندارند ما أَمْرُنَا الا واحدتن کلمحن بالبصر نیست امر ما حال اینجا بحث اینی که این همه خلائق چطور حساب و کتاب میشه قیامت با این همه حجم سنگین مخلوقات فیصلش چطور میشه الله میفرمان امر ما برای چیزی که بخوایم نیست الا واحدتن فقط یک بار یکی یک کلمه یک بار گفتن چی کن کلمحیم بالبسر مثل یک چشم به هم زدن لمحیم بالبسر یعنی چه؟ یعنی یک چشم به هم زدن یعنی وما امرنا لشیئی نورید و تکوینه الا ان نقول له کن فيكون. هر چیزی ما بخواهیم بشه یک کلمه میگیم به اندازه پلک زدنی شما چقدر طور میکش عامین قدر وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ خداوند چقدر شرک را مبغوز می‌دارد که به مشرکین میگه ای مشرکین امثال شما را ما قبلا هلاک کردیم اهلکنا اشیاءکم اشیاءکم یعنی امثالکم هم کیشان شما هم مشربان شما هم مذهبان شما اشباحکم فی الكفر من الامم الخاليه قرطبی میگه ما اونها را هلاک کردیم فحل می مدکر آیا کسی از پند بگیره از این آیات الهی، از این تحولاتی که در آلم بوده و کل شیء فعلوه فی الزبر هر کاری که اونها انجام دادن در صحیفه اعمال نوشته شده ثبت و زبته بر اساس اون محاکمه هست و کل سغیر و کبیر مستطر، هر کوچک بزرگ این نظم اعمال هست هر کوچک بزرگ مستطر نوشته شده به سطر در به قلم در پس همه مجرمان به کیفر اعمالشون میرسند اما متقیان ان المتقین فی جنات و نهر همانا اهل تقوا خدا ترسان اونهایی که در زندگی لباس تقوا را بتن کردند اینها در جنات و در باغات و نهرهای الهی هستند فی مقعد صدق در جایگاه اهل صدق فی مقعد صدق یعنی فی مقام اهل صدق اینها در جایگاه اهل صدق هستن عند ملیک مقتدر نزد اون ذاتی که پادشاه مقتدر است یعنی قرب خدا اینها جای دارن خدای عزوجل اینها را در جای خوبی جای داده